داستان های صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه این داستان حاضر جواب روزی روزگاری مراسم تاجگذاری جایسینگ به عنوان رانای میوار در کشور برگزار میشد. رانا یعنی حاکم و فرمانروا این موضوع مهمی در شهر بود و به همین دلیل همه جا جشن و شادمانی برپا بود راه ها رو با پرچم های خوش رنگ آزین بسته بودن صدای تبل ها با صدای شیپورها در هم آمیخته بود و زنگ های دهکده به صدا در آمده بود و در این اوج شادی و موسیقی کمتر کسی میتونست خودشو آروم نگه داره جمعیت در گروه های بزرگ دور هم حلقه زده بودن و صدای بلند خنده و شادی از گروه سوارکاران سلطنتی در اطراف شهر به آسمان بلند شده بود حاکم میوار حالا یه پسر جوون بود اما آیا این جوون میتونست از پس مشکلات بر بیاد؟ کسی به طور یقین نمیتونست به این سوال جواب بده درباری ها اعتقاد داشتند هر اتفاقی ممکنه بیفته اونا از قدرت مغلها ها میترسیدند چون پدر و پدر بزرگ با مغول ها جنگیده و از اونا شکست خورده بود سلطان مغول هم نه این موضوع رو فراموش کرده بود نه اونا رو بخشیده بود بعد از اینکه جشن و سرور تمام شد درباریا اطراف رانای جوان گرد اومدن و ادای احترام کردند جایسینگ معدبانه اونا را به قصر دعوت کرد وقتی همه توی سندلی های خودشون نشستند رانا به مسین ترین عضو دربار اشاره کرد تا مذاکرات را شروع کنه پیرمرد برخاست و ایستاد و پس از شرح امیدواری های مردم گفت ماهاراج برای شما طول عمر و آرامش آرزو داریم و برای موفقیت شما دعا می کنیم امیدواریم تحت فرمان فرمانروایی شما مردم در صلح و آرامش و سعادت از زندگی خودشون لذت ببرند جای سینگ گفت ممنونم انشاءالله خداوند مرا در انجام وظایفم کمک کنه من به حمایت و اندرزهای شما نیازمندم شما سیاستمدار هستین و مورد اعتماد پدرم بودین صدای او با یادآوری نام حاکمان قبلی یعنی پدر و پدر بزرگش بالا و پایین میرفت. رفت پیرمرد درباری بهش اطمینان داد که شما همیشه میتونید، روی حمایت ما حساب کنید درباریا مشغول بحث و تبادل نظر در مورد مسائل حکومتی شدند پیرمرد پیشنهاد کرد که مهاراجه به دهلی بره و مراتب احترام خودش رو به مغول بزرگ به جا بیاره و هر طور شده اونو مجذوب خودش کنه تعدادی از درباریان با این پیشنهاد موافق نبودن و میگفتند این کار ممکنه برای حاکم جوان خطرناک باشه او هنوز به میزان کافی با آداب سیاست آشنا نشده و تعالیم لازم را نیاموخته و سیاست دربار بدشاه مغل رو نمیشناسه. ممکنه خارج از موضوع صحبت کنه یا در مقابل پرسشی یه پاسخ تند بده یا بر سر هر چیز کوچیک و بی اهمیتی با اونا بحث کنه یا از اطاعت سر سرباز بزنه. و مورد غضب سلطان نیرومند مغل قرار بگیره رانای جوان به مناظره اونا گوش میداد بعد دستش رو بالا برد درباریا متوجه شدن که میخواد سخنی بگه پس همگی ساکت شدن و بهش نگاه کردند جایی با اطمینان و قوت قلب گفت به عقاید و نظرات شما احترام میگذارم هر چند شما خواسته منو نپرسیدین اما من آماده رفتن به دهلی هستم سعی میکنم مثل افراد بزرگ رفتار کنم و روابط خوبی با بدشاه برقرار کنم فکر میکنم باید رفت و پلهای تفاقم بین پیدوار و دهلی رو برقرار کرد این تنها راهیه که میتونه باعث تداوم بقای سرزمین کوچیک ما باشه درباریا به بحث و گفتگو ادامه دادن و سرانجام با رفتن او موافقت کردند روز بعد رانای جوان به دربار بدشاه رفت یکی از کارکنان دربار بهش خوش آمد گفت و او را به جایگاهش راهنمایی کرد رانای جوان بسیاری از حاکمان حاضر رو میشناخت بهشون سلام کرد و آداب احترام رو به جا آورد اونا هم او را در آغوش گرفتن و نوازش کردن و بهش اختیار دادن که مراقب رفتار خود با بدشاه باشه رانا خیلی جوان بود بنابراین تمام چشم ها روی او متمرکز شده بود. بسیاری از حاکمان با ترس بسیار به این فکر میکردند که چگونه این جوان می تونه در مقابل پادشاه شه ایسته؟ و او رنگ زیب چطور باهاش برخورد میکنه؟ آیا رفتاری دوستانه داره یا با رفتار متکبرانه غرور رانای جوان رو میشکنه؟ شیپورها به صدا درآمدند ضربات تبلها با صدای شیپورها در هم آمیختند وقتی ورود بدشاه اعلام شد تمام حاضران ایستادند اورنگزیب زیب روی تخت خودش نشست وقتی سکوت برقرار شد سلطان حکمرانان را یک به یک از نظر گذروند فرمانروایان محلی جلو میرفتند و با سلطان مغل بیعت می کردند. سرانجام نام جایی سینگ اعلام شد او محکم روی پاهای خودش ایستاد سر حال و شاداب به سمت سلطان رفت و معموری با صدای بلند اعلام کرد راجا جایی از میوار جایی تعظیم کرد و از خشم و غضب حالت حمله به خودش گرفت از تختش بلند شد، دستهای خودش را بلند کرد و با عصبانیت روی شانه های جایی گذاشت و با شدت اونو تکون داد و با حگجان گفت هم پدرت هم پدر بزرگت خائن بودند. اونا در بار مغل رو قبول نداشتند و هرگز بزرگی و شاهنشاهی ما را قبول نکردند. جایی کلمه سخن نگفت، دوباره تعظیم کرد و حتی وقتی که دستهای اورنگ زیب روی شانه هاش بود، سرش را بلند کرد چشمهاش رو به بچه دوخت و لبخند زد او رنگ زیب با چشمه های شبیه شاهین به او خیره شده بود راجا با صدایی نرم و روشن گفت ای مغل بزرگ در مراسم عروسی داماد یکی از دست عروس رو در دستهای خودش میگیره و تعهد میده که در تمام عمرش مراقبش باشه اما من خوشحالم که بچه با هر دو دستش منو نگه داشته آیا این برای من کافی نیست؟ آیا باز هم باید نگران آینده باشم؟ با این کار سلطان من دیگه هیچ نگرانی از آینده ندارم خشم و غذب اورنگزیب زیب مثل آبی جاری شد و به لبخندی روی لباش تبدیل شد او از جواب رانای جوان خوشش اومده بود پسرک جوان در اون وضعیت رفتاری بسیار شایسته داشت و تونست قلب او رنگ شاه رو تسخیر کنه. بدشاه بدون اینکه خون خونسردی خودش رو از دست بده گفت تو از اجدادت خردمندتر و از بسیاری از مردان من داناتری. به همین دلیل به تو لقب سوایی میدم. بعد؟ بدشاه جایی رو در آغوشش کشید و اعضای دربار شاهزادگان و درباریان فریاد حل و شادی سردادند سفر به دنیای پر رمز و راز افثانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی